آگاهی معمولی، نا آگاهی شهر منظور شما از سطوح مختلف ناآگاهی آگاهی چیست؟ همانطور که میدانید در خواب مدام بین خواب بی و خواب بارویا در رفت آمد هستی. به همین شکل در بیداری بسیاری از آدم بین حالت ناآگاهی معمولی و حالت ناآگاهی ژرف در رفت آمد هستند. منظور من از ناآگاهی شایع و معمولی آن است که تو خود را با روند افکار و احساسات واکنش آرزوها، آرزو و خوش نیامدن هایت بپنداری. این حالت حالت عادی بسیاری از آدم هاست. در این حالت، ذهن نفسانی توست که تو را راه میبرد و تو نسبت به هستی کل بیخبری. البته این حالت، با درد و رنج شدید و احساس بدبختی همراه نیست. اما با ناراحتی، ملال، خستگی و عصبیت همراه است. شاید متوجه این حالت در خود نشوی، زیرا این حالت، حالت عادی بسیاری از آدم هاست، مثل زمانی که متوجه صدای کولر نیستی، وقتی که آن را خاموش می کنند، تازه متوجه می شوی که صدایی بوده است. وقتی این صدا متوقف می شود، احساس سکوت و آرامش می کنی، بسیاری از آدم ها مشروب، مواد مخدر، سکس، غذا، کار، تماشای تلویزیون، حتی خرید رفتن را به عنوان داروی بیهوشی استفاده می کنند، تا دمی از شر ناراحتی و نارضایتی اساسیشان بکاهند به تعبیر مولانا تا دمی از هوشیاری وارهند ننگ خمر و بنگ خود می نهند می گریزند از خودی در بیخودی یا به مستی یا به شغل ای محتدی وقتی این حالت اتفاق می افتد کار و فعالیت های تو از شور و سرمستی توهی می شود و یک نواخت و تکراری می شود. شاید از کار خود چیزهایی گیر بیاوری و موقتا خوشحال شوی اما این خوشحالی تو شادمانی و سرور نیست و خیلی زود جای خود را به احساس ملال و خستگی می دهد. ملال و ناخوشنودی به تدریج به درد و رنج ناآگاهی ژرف تبدیل می شود. حالت درد و رنج شدید و احساس بدبختی حالتی که در آن چیز غلط از آب در میآید نفس در معرض تهدید قرار میگیرد احساس کمبود و نداری میکنی و در رابطت با خانواده و دیگران خود را شکست خورده احساس میکنی حالت ناآگاهی ژرف یا به تعبیر مولانا بیهوشی حالت پررنگ ناآگاهی شایع و معمولی است البته این دو با هم فرق میکنند اما نه در کیفیت بلکه در کمیت و شدت و زد. در حالت ناآگاهی شایع و معمولی مقاومتی در برابر آنچه که هست به وجود می و همین مقاومت است که تو را شکننده و ناخشنود میسازد. بسیاری از آدمها این ناخوشنودی را به عنوان بخشی از زندگی عادی خود پذیرفتند. برای آنها ناشادی وضعی عادی شده است. وقتی این مقاومت به دلیل چالشها و تهدید شدن نفس شدت میگیرد نگرش منفی تو نیز فربه می شود و خشم ترس تهاجم افسردگی و غیره به وجود میآید ناآگاهی ژرف اغلب به معنای آن است که دردمندی بدن تو خود را تثبیت کرده است و تو خود را با این دردمندی همزات پنداری این حالت در مواقع و جاهایی نیز به وجود می آید که یک جمع و یا یک ملت حوضه از انرژی منفی جمعی را پیرامون خود ایجاد می کند برای اندازگیری سطح ناآگاهی خود می توانی به چگونگی مواجه شدن خود با چالش های زندگی نگاه کنی آدمی که ناآگاه است، هنگام مواجه شدن با چالش های زندگی دوست دارد ناآگاه تر شود اما آدم آگاه هنگام مواجه شدن با چالش‌ها و دشواری‌های زندگی دوست دارد آگاهتر یا هوشیارتر باشد تو می‌توانی چالش‌ها و دشواری‌های زندگی را به ابزاری برای بیداری خود تبدیل کنی از طرفی می‌توانی به چالش‌ها و دشواری‌های زندگی اجازه بدهی تا بر تو چیره شوند و تو را به اعماق ناآگاهی یا ناهشیاری ببرند در این صورت رؤیای ناهشیاری شایع و معمولی به کابوس ناهشیاری ژرف تبدیل می شود اگر نتوانی در اوضا و احوال معمولی هوشیار و حاضر باشی مانند هنگامی که در اتاق خود تنها نشسته ای، در جنگل یا کوه قدم می زنی، یا به کسی گوش سپرده ای بی قادر نخواهی بود در شرایطی هوشیاری خود را حفظ کنی که با دشواری یا مصیبتی جدی روبرو میشوی در این مواقع خود را به واکنشهای خود میسپاری واکنشهایی که چیزی نیستند مگر های گوناگون ترس بدین سان به اعماق ناآگاهی یا ناهشیاری فرو میروی چالشها و های زندگی آزمونی برای تو هستند کیفیت برخورد تو با دشواری‌های زندگی است که میزان آگاهی تو را نشان می‌دهد بنابر این بسیار ضروری است که در موقعیت‌های عادی و نبود چالش‌ها و دشواری‌های جدی آگاهی بیشتری را به زندگی خود تزریق کنی بدین سان هوای معتدل حضور تو را رشد می‌دهد حضور میدانی از انرژی پیرامون تو به وجود می‌آورد هیچ ناهشیاری، هیچ نگرش منفی، هیچ خشم و خشونتی نمی تواند از این میدان انرژی عبور کند و خود را به تو برساند. آنها ناپدید می شود. همانطور که تاریکی در حضور نور ناپدید می شود. شاهد بودن انصر اساسی حضور است. وقتی یاد می گیری که شاهد افکار و احساسات خود باشی، تازه میفهمی که نقش ثابت ناهوشیاری معمولی تو چه بوده و تو چرا هرگز با خود راحت نبوده ای؟ در سطح افکار خود مقاومت بسیاری را در شکلهای قضاوت کردن احساس نارضایتی و فرافکنی به آینده و گریز از لحظه ها را مشاهده می کنی. در سطح عواطف و احساسات خود دغدغه‌ها تنشها، ملالتها و عصبیت ها را مشاهده می‌کنی. هر دوی اینها ابعاد ذهن تو در حالت عادی مقاومتند. آنها به دنبال چه می‌گردند؟ کارل یونگ در یکی از کتابهایش گفتگوی دارد با یکی از بومیان آمریکا کسی که معتقد بود سفیدپوستان قیافه‌های قیافه های عصبی چشمانی زلزده و رفتاری خشن دارند او گفته است آنها همیشه در جستجوی چیزی هستند آنها به دنبال چه می سفیدپوستان سفید پوستان همواره گم ای دارند آنها مدام بیقرار و ناراحتند. ما نمیدانیم یا آنها چیست به نظر ما آنها دیوانند. بدیهی است احساس نهفته ناخوشنودی پیش از ظهور تمدن صنعتی غرب پیدا شد اما در تمدن غرب که میرود الگوهای خود را بر جهان تحمیل کند این احساس شدیدتر است احساس ناخوشنودی در زمان مسیح نیز بوده است پیش از آن در زمان بودا نیز بوده است چرا تو هم باره داری؟ مسیح از یکی از هواریون خود پرسید آیا دقدقه های تو میتواند یک روز به عمر تو اضافه کند؟ بودا گفته است خواستگاه در, در رنج آدمی خواست و آرزوست مقاومت در برابر لحظه حال و عدم رضایت و تسلیم ریشه در عدم اعتماد ما به هستی دارد ناآگاهی نسبت به هستی سرچشمی تمدن صنعتی توهی از انسانیت ماست، فروید نیز این احساس نهفته ناخرسندی را فهمیده و در کتاب خود با عنوان تمدن و ناخرسندی هایش درباریان سخن گفته است. اما او ریشه این ناخرسندی را تشخیص نداد و ندانست که آزادی از این ناخرسندی کاری است ممکن. کارکرد غلط جمعی، تمدنی ناشاد و بی انداز خشن به بار آورده است که نه تنها خود را بلکه کل زندگی را بر روی کره زمین تهدید می کند. محو ناهشاری یا معموللی. پس چگونه میتوان از این مصیبت رها شد؟ آن را به سطح آگاهی خود بیاور. نسبت به آن آگاه شو. ببین قضاوتهای بیهوده، مقاومت در برابر آنچه که هست و نفی لحظه ی حال چگونه موجب پدید آمدن دغدغه ها، ها و تنش ها میشوند. با تابش نور آگاهی هوشیاری هر آنچه که متعلق به ساحت ناآگاهی و ناهشیاری است، محو می شود. به محض آنکه شیوه محو کردن ناهشیاری معمولی را یاد می گیری، نور حضور تو درخشیدن آغاز می کند. شاید نتوان ناهشیاری معمولی را راحت کنار گذاشت، زیرا امریست عادی و شایه و به همین دلیل تا حدودی مورد قبول همگان. با خودنگری، نظارت بر احوالات ذهنی عاطفی خود را به یک عادت تبدیل کن. از خود بپرس آیا من در لحظه کنونی آسوده خاطرم؟ این پرسشی است اساسی. این پرسش را مدام مطرح کن. یا از خود بپرس در این لحظه در درون من چه می‌گذرد؟ حداقل به درونیات خود نیز به اندازه آن چه در بیرون تو گذرد اهمیت بده. اگر درون تو سامان یابد، بیرون تو نیز سامان خواهد یافت. درون تو واقعی تر است از بیرون تو. تو بدون واسطه ی حواس خیش، درون خیش را میبینی. واقعیت های بیرون از صافی حواست تو میگذرند و آنگاه به تو میرسند. سعی نکن برای پرسش های بالا به سرعت جوابی پیدا کنی. توجه خود را به درون خیش معطوف کن، نگاهی به درون خیش بیانداز ذهن تو چه فکرهایی را تولید میکند چه احساسی داری توجه خود را به بدن خیش معطوف کن به محض که پی میبری که قشری از دقدقهها و نگرانی روی دلت را پوشانده و پارازیت متنی در پسزمینهٔ آگاهی توست متوجه این نکته میشوی که چگونه در مقابل زندگی میایستی از آن اجتناب میکنی و آن را نفی می کنی با نفی لحظه حال آدمها به شیوه های گوناگون در مقابل لحظه حال میستند با تمرین توان خودنگری و مشاهده حالات درونت افزایش می رحایی از ناشادی آیا بیزار هستی از کاری که می کنی؟ این کار ممکن است شغل تو باشد یا تو موافقت کرده باشی کاری را انجام بدهی و اکنون در حال انجام دادن آن باشی اما پاره ای از وجود تو از این کار بیزار است و در برابر آن مقاومت می کند. آیا نسبت به یکی از خیشان خود تنفری را در دلت احساس می کنی؟ آیا می دانی انرژیی که به سان از خود ساته می کنی تو را و افراد پیرامون تو را خراب می کند؟ به درون خیش نگاهی دقیق بینداز آیا در خود بیزاری و اکراه می بینی؟ اگر اگر است، آنها را هم در سطح ذهن و هم در سطح عواطف و احساسات مشاهده کن ذهن تو چه فکرهایی را پیرامون این وضعیت تولید میکند آنگاه به عواطف و احساسات خود نگاه کن عواطف و احساسات واکنش بدن تو به افکار توست آنها را احساس کن آیا احساسات تو خوشایند هستند یا ناخوشایند؟ آیا این همان انرژی است که دوست داری در درون خیش داشته باشی؟ آیا قدرت انتخاب داری؟ ممکن است حق تو را خورده باشند. ممکن است کار تو ملالآور و کننده باشد. ممکن است یکی از نزدیکان تو با تو درست برخورد نکند و مدام تو را بیازارد. همه اینها ربطی به ماجرا ندارند. اینکه افکار و احساسات تو نسبت به این وضعیت توجیح پذیر است یا نه در اصل قضیه تفاوت ایجاد نمی کند. حقیقت آن است که تو در برابر آنچه که هست مقاومت می کنی. تو لحظه حال را به دشمن خود تبدیل کردی تو ناشادمانی میآفرینی و بین درون و بیرون خود جنگ بپامی کنی ناشادی تو نه تنها درون تو و اطرافیان تو را می آلاید بلکه روح جمعی بشریت را نیز آلوده می کند. روحی که تو نیز پاره ای از آن هستی. آلودگی کره زمین انعکاس بیرونی آلودگی درون توست. انعکاس درون آلوده میلیونها فرد ناآگاه که مسئولیت دنیای درون خود را به عهده نمی یا دست بکش از کاری که انجام می دهی و دوستش نداری و به طور سریح و شفاف صحبت کن با کسی که تو را آزرده است و احساس خود را به او بگو یا اینکه حس منفی خود را کنار بگذار حسی که ذهن توان را پیرامون وضعیت موجود پدید آورده است و کاری ندارد جز آن که خود دروغین تو را فربهتر کند درک بیهودگی این حس منفی بسیار مهم است اتخاذ شیوهی انکاری و منفی در برابر وضعیت موجود هرگز کارساز نبوده است. در واقع این شیوه در بسیاری از موارد دست و بال تو را میبندد و مانع دگرگونی حقیقی می شود. هر کاری که برخواست از انرژی منفی تو باشد، توسط همین انرژی منفی آلوده می شود و درد و رنج ناشادمانی بیشتری را به وجود می آورد. علاوه بر این حالت منفی درونی مصری هم هست، ناشادی راحت تر از بیماری های افونی به دیگران سرایت می کند. به واسطه ی قانون انعکاس صدا، حالت منفی درونی تو منفی اندیشی بلغوی دیگران را به فعلیت در می آورد و به شکلی شدیدتر به خود تو باز می گردد. مولانا می گوید این جهان کو هست و فعل ما ندا. سوی ما آید نداها را صدا مگر اینکه دیگران مسون باشند یعنی به شدت آگاه باشند آیا تو مشغول آلودن جهانی یا مشغول تطهیر جهان تو مسئول فضای درون خیش هستی هیچ کس جز تو مسئول آنچه در درون تو میگذرد؟ نیست تویی که مسئول این کره خاکی زیبا و زنده‌ای بیرون تو، عکس درون توست. اگر آدمها درون خیش را تطهیر کنند، بیرون خیش را نیز، آلوده نخواهند کرد. چگونه می توان این حس منفی نسبت به زندگی را کنار گذاشت؟ با کنار آن، همانطور که یک تکه زغال شعلور را که روی دستت افتاده است، به زمین می اندازی. همانطور که باری سنگین و بی استفاده را از دوش برمیداری و به کناری پرتاب می کنی با فهم این نکته که تو دوست نداری بسوزی یا سنگینی باری بی را تحمل کنی بنابراین آن را رها می کنی و آسوده می شوی معمولا ناهشیاری جرف مانند دردمندی بدن یا دردهای عمیق دیگر مانند از دست دادن یک عزیز نیازمند استهالند استهاله یعنی دگرگونی بنیادی این استهاله از طریق پذیرش آمیخته به حضور تو صورت میگیرد توجه پایدار تو از طرف دیگر بسیاری از الگوهای ناهوشیاری عادی را با فهم این نکته که دیگر به آنها نیاز نداری تو آزادی و ای از انعکاس های شرطی شده نیستی میتوانی به راحتی کنار بگذاری همه اینها به این معناست که تو توان دستیاوی به نیروی لحظه حال را داری بدون این نیرو تو هیچ اختیاری نداری شما بعضی از احساسات را منفی میخوانید بدینسان آیا دو قچ به خوب و بد را در ذهن نمیآفرینید نه، این قطب ها وقتی آفریده شد که تو در باری لحظه حال قضاوت کردی و آن را بد دانستی همین قضاوت بود که احساس منفی را به وجود آورد اما اگر شما بعضی از احساسات را منفی بدانید آیا این بدان معنا نیست که آن احساسات نباید وجود داشته باشند و خوب نیست که کسی دارای آن احساسات باشد؟ به نظر من باید به خودمان اجازه بدهیم که هر احساسی را که خود به خود پیدا می شود داشته باشیم و نگوییم یه احساس بد است و ما نباید چنین احساسی داشته باشیم. عیبی ندارد آزورده باشیم، عیبی ندارد عصبانی باشیم، عیبی ندارد برانگیخته و بیزار باشیم. در غیر این صورت خود را سرکوب کرده ایم، دوچار تزاد و تناقض درونی شده ایم. و خود را آنچنان که هستیم در هر آنچه که هست و اتفاق میافتد خیر و خوبی نهفته است البته که چنین است وقتی یک الگوی ذهنی و یا احساس و واکنشی را در خود میبینی آن را بپذیر تو به اندازه کافی آگاه نبودی و در نتیجه چنین الگو و احساس و واکنشی در تو پدیدار شده است تو اختیاری نداشتی. این قضاوت نیست بلکه دیدن واقعیت هست اگر تو اختیاری می‌داشتی و یا می‌دانستی که اختیاری داری آیا درد و رنج را برمیگزیدی یا شادمانی را آرامش را یا دغدغه را آشتی را یا جنگ را آیا ممکن بود فکر یا احساسی را انتخاب کنی که پیوندهای تو را با حالت طبیعی سعادت و سلامت قطع کند و تو را از آب حیات شادمانی درون خیش محروم سازد من احساس منفی را بد مینامم نه به آن دلیل که تو را سرزنش کنم که چرا چنین احساسی داری بلکه میخواهم تو را متوجه یک بیماری کنم در قرن بیستم آدمها به دست خود صد میلیون آدم دیگر را کشتن چرا چرا آدمها چنین درد و رنج عظیمی را بر خود تحمیل می کنند. آیا آدمها چنینند زیرا با ذات حقیقی خود در ارتباطند، همان ذاتی که سرچشمه همه شمانی و خوبی ها و زیبایی هاست؟ البته که نه. تنها آدمهایی که در حالتی کاملا منفی قرار دارند تنها کسانی که احساس خوبی ندارند می توانند چونین فاجعه هایی را به بار بیاورند. این فاجعه ها، این اکاس آن چیزی است که در درون آنها می‌گذرد. همکنون همین آدم‌ها هستند که طبیعت را ویران می‌کنند و به یغما می‌برند. طبیعتی که ضامن حیات بر روی کره زمین است. کردنی نیست اما حقیقت دارد. انسان موجودی است ظلوم و جهول. انسان موجودی است خطرناک و بیمار. این قضاوت نیست بیان واقعیت است. اما این نیز واقعیت است که انسان توان آن را دارد که برتر از فرشته ها بنشیند زیر لایه های دیوانگی انسان چشمههای زلال بصیرت نهفته است شفا و بهبودی در دسترس انسان است در لحظه حال به سخن تو بازگردم درست است که وقتی حالات و احساسات منفی خود را میپذیری؟ دیگر مجبور نیستی کور کورکورانه خود را به دست آنها بسفاری و آنها را به دیگران سرایت بدهی اما میترسم خود را گول بزنی و در همین مرحله بمانی وقتی پذیرش را برای مدتی تمرین کردی به نقطه‌ای می‌رسی که لازم است به مرحله بالاتر بروی مرحله‌ای که در آن چنین حالات و احساساتی به وجود نمی‌آیند اگر چون این جهشی نکنی پذیرش تو تنها یک برچسب ذهنی می شود که به نفسانیت تو مجالی می دهد تا ناشادمانی را فربهتر کند و به دین سان احساس جدایی تو از دیگران و از اینجا و لحظه حال شدیدتر می شود. همانطور که میدانی جدایی مبنای احساس هویت نفس است. پذیرش واقعی بیدرنگ این حالات و احساسات را تبدیل می کند اگر معنای ژرف این جمله را بفهمی که در هر آنچه هست و اتفاق میافتد خیر و خوبی نهفته است که این گفته بسیار درست هم هست آنگاه آیا در تو جایی برای حالات و احساسات منفی باقی میماند بدون قضاوت بدون مقاومت در برابر آنچه هست به اتفاق میافتد، چون این حالات و احساساتی به وجود نمیآید. تو این مفهوم را در ذهن خود داری که هر آنچه هست و اتفاق میافتد خیر و خوب است. اما دل تو هنوز به درستی این جمله اقرار نکرده است. به همین دلیل است که الگوهای کهنی ذهنی عاطفی مقاومت در برابر آنچه هست، به اتفاق میافتد هنوز در تو باقیاند همین الگوهایند که به تو احساسی ناخوشایند میدهند آیا تو از حق خود برای ناآگاه بودن از حق خود برای رنج بردن دفاع می کنی؟ نگران نباش هیچکس نمیخواهد این حق را از تو بگیرد به محض اینکه بفهمی غذای خاص تو را بیمار می کند. آیا همچنان به خوردنان ادامه می دهی و میگویی بیمار شدن خیر و خوب است؟